Thank mm -hmm. you. فصل هم. پدرم بیش از سما همراه پولت در خاور زمین گردش میکرد در تمام این مدت یک نامه هم برای ما نفرستاد حالان که مطمئنم درباره ما فکر میکرده است اما نشستن و نامه نوشتن برای پدرم کار بسیار مشکلی است اگرچه ما خبری از او نداشتیم ولی جریان سفر او را در روزنامه‌ها میخواندیم. بنادری که به آنها وارد می‌شد، اسامی عجیب و غریبی داشتند. یوکهاما، شانگهای، هنگ کنگ، سنگاپور، باتاویا، جاوه، سوماترا، بالی. در هر بندری توقف می‌کرد، روزنامه‌ها این بحث را پیش می‌کشیدند که آیا مخفیانه با پولت ازدواج نکرده است. اما همه این ها کوچکترین اثری بر من و سیدنی نداشت. ما فقط در این فکر بودیم که چند وقت در خانه بالای تپه بر روگ ما بسته شده است. ما خانه و پدر و پولت و دوستان را از دست داده بودیم. درحال بهار آن سال به ما خوش نگذشت. ما برای اولین بار با تراژدی برخورد کردیم. در عید پاکانسال، مادرم هنگامی که داشت سفر موفقیت هامیز خود را به عنوان آوازخوانی برجسته در اسکاتلند ادامه می داد، دوچار حمله عصبی شد و از درآمد. اگر مستخدمه وفادارش به نام گلدویز همراهش نبود، او به کلدی در یک کشور خارجی تک و تنها بود. تلگرافی برای نانا رسید که از او می خواست فوراً به نزد مادرم حرکت کند. اما در آن موقع نانا هم سخت مریض بود. زاتوریه دو طرفه ناشت و نمی توانست از بستر بیرون بیاید. گولدویس ناچار شد دستنها مادرم را به آمریکا برگرداند و او را در ساناتوریومی بگذارد. در ماه مه نانا که خودش تازه هنوز از بستر بیماری بلند شده بود توانست به مشرق آمریکا برود و مادرم را به خانه بیاورد. وقتی برگشتند نانا یک چراگاه بیست جریب در درگه سان فرناندو برای همگی ما خرید. این زمین درست آن طرف تپه های حالی بود و در آن زمان از هیاهوی شهر و مردم و به خصوص آشنایان که ممکن بود دیدارشان اثر بدی روی مادرم داشته باشد دور بود. در این موقع نانا وظیفه بسیار دشوار پرستاری مادرم را به عهده گرفت. اختلال به فکری و عقلی مادرم در اثر یک عدم تعادل ترشح قده ها بدتر شده بود. احتیاج به عمل جراحی داشت، ولی چنان به سرعت ضعیف می‌شد که اتبا جرأت آن را نمی‌کردند. وضع بیماری مادرم به صورتی یک دور تسلسل در آمده بود. به این ترتیب که وضع جسمی او وضع روحی را مختل ساخت و وضع روحی او به نوبه خود باعث تحلیل وضع جسمانی می‌شد. برای همه ما دوران پاسترابی بود به خصوص برای مادرم که باید راه دراز مبارزه با بیماری را برای شفا و تندرستی دست تنها پیماید وقتی من و سیدنی این بار او را دیدیم چقدر عوض شده بود دیگر به آن زن بشاش و سرزندهی که ما می و همیشه آماده خنده و تفریح بود شباهتی نداشت اکنون متناوباً دوچار افسردگی و هیجان می‌شد و با کوچکترین چیزی ممکن بود از جا در برود. کافی بود رادیو را باز کنم و رادیو موسیقی کلاسیک داشته باشد که او دچار ی عصبی شود. اوایل این وضع را خیلی جدی نمی‌گرفتیم و فقط توضیح نانا را می‌پذیرفتیم که می‌گفت سخت کار کرده، ضعیف شده و مدتی طولانی احتیاج به استراحت دارد. آن روز اوائل ژوئن را که پدرم به مدرسه تلفن کرد و اطلاع داد بازگشته است و می ما را ببیند فراموش نمی کنم. من و سیدنی از خوشحالی سر پا بند نمی شدیم. روز جمعه مثل اینکه اصلا ماهای تنهایی وجود نداشته است فرانک با لبخندی دمه در مدرسه ظاهر شد که ما را به خامه یه بالی تپه ببرد. در راه خانه فرانک به ما گفت پدرتان نزدیک هنگ کنگ روی عرشه کشتی ازدواج کرد. وقتی جزئیات قضیه را از او پرسیدم، سری تکان داد و خنده گفت من ازدواج آنها را ندیدم. آخر من که همیشه دورا برای آنها نمی پلیکیدم. آنها به کار خودشان مشغول بودند و من به کار خودم. اما این مطلب را خودشان به ما گفتند. بالاخره باز به خانه آشنای پدرم رسیدیم. پدرم و پولت منتظر ما بودند هر دو به خصوص پدرم خوشحال به نظر میرسیدند. او همیشه از گردش های لذت می برد ولی به خصوص از بازگشتن سر خانه و زندگی خود خیلی خوشحال بود. در واقع او مرد سفر نبود و علاقه به اینکه در جایی مستقر باشد در او چنان ریشه دار بود که شانزده سال بعد از این سفر را در آمریکا ماند. من وسییدنی دوان دوان بالا رفتیم و اول پدرم و بعد پولت را بوسیدیم. پدرم با خنده حرفهای فرانک را تایید می کرد و پولت خم شده و ما را نوازش می نمود. اما اگرچه پدرم به سادگی به ما گفته بود که با پولت ازدواج کرده است ولی قرار شد که این مسئله سالها به صورت راز خانوادگی باقی بماند. زیرا هیچ کدام آنها علاقه نداشتند موضوع را به جرایت اعلام کنند. در این مدت طولانی آنها با هم بودند روزنامه ها به بحث درباره اینکه ازدواج صورت گرفته یا نه و در کجا و کی بوده است ادامه میدادند جوان جوان آن سال پر از هوادث بود در این ماه مادرم دچار یک نوع اندوه ناشی از پشیمانی شد که سالها او را رها نهمیکرد ولی در واقع او مسئول آنچه اتفاق افتاد نبود چطور ممکن است یک مریض سخت، مسئول چیزی باشد؟ این ماجرا مرا به فهم از زندگی تر کرد. مادرم موافقت کرده است که من این داستان را بازگو کنم زیرا روابط درونی من و پدرم را در آن موقع بهتر نشان می دهد. تا ماه جوانه سال 1936، منون سیدنی بین خودمان با دیگر کودکانی که پدر و مادرشان از هم جدا شدهاند تفاوتی قائل نبودیم. ما میدانستیم که والدین ما نتوانستند با هم زندگی کنند و موقعی که ما خیلی کوچک بوده ایم از هم جدا شدهاند. اما زشتی این طلاق را به دقت از ما پنهان نگاه داشته بودند. در واقع هم دو دعوای دادگاهی بین واردین ما چیزی نبود که برای ما ضربه روحی محسوب شود. به ناگواری نگواری خود جریان دعوا هم پدرم و هم مادر ما توجه داشتند که احترام یکدیگر را نگاه دارند. مادرم وقتی که با ما زندگی می کرد به ما می گفت: هیچ خبری از پدرتان برای من نیاورید و هیچ چیزی هم از اینجا برای او نبرید. ما هر کدام برای خودمان زندگی می کنیم و راه جداگانه داریم. پدرم نیز به روی خود هرگز نمیپرسید در خانه مادریم چه چه میگذرد. سؤالهای او درباره مادرم همیشه معدبانه و به این مضمون بود: حال مادرتان چطور است؟ امیدوارم خوش باشد. این روزها چه میکند؟ به سفر می رود. در مدرسه نیز هیچ کس راجع به طلاق آنها صحبت نمی کرد. کودکان دیگری هم بودند که پدر و مادرشان از هم جدا شده بودند و هیچ کس توجه خاصی به این مطلب نداشت. همچنین عد زیادی پدر و مادرشان در کار هنر نمایش و سینما بودند. مانند جورج، پسر کلنگلند، باستر باسترکیتون و پسر پلواتیمان و پسر ماکس فاکتور. وقتی در والدین خود حرف میزدیم، بیشتر در موفقیت‌ها و کارهای آنان در تاعترا سینما بود. دوستان ما به من و سیدنی گفتند خوش به حالتان پدرتان هنرپیشه مشهوری است مادرتان خواننده خوشگل است راستی پدرتان میخواهد با پولت عروسی کند پولت مثل عروسک است ما که به حرفهای تو ام با قبطه دوستان گوش می کردیم می زندگی ما روی هم رفته خیلی خوش است هرگز به خاطر ما خطور نمی کرد که زندگی دارای جنبهای تیره تر و سیاه تری هم هست تا اینکه روز بیت ساشتومه جوان یعنی روز تولدم یا لااقل روزی که تولد مرا جشن می گرفتن، مادرم داستانی برای من گفت که زندگی را در نظرم تیره کرد در این موقع من و سیدنی از مدرسه آمده و وقت من را بین پدر و مادرمان تقسیم کرده بودیم. آن روز من به اتاق خواب مادرم که در آن خوابیده بود رفتم. من همیشه آنجا می رفتم و به طور مبهمی نگران او بودم و همیشه امید داشتم بهتر شود. اما این دفعه قصد خاصی هم داشتم. روز تولد من بود و مادرم سر و سر صبح را در خواب بود و به من تبریک نگفته بود. امیدوار بودم این بار بیدار باشد و به خاطر بیاورد که روز تولد من است. اما او هنوز به آرامی در آنجا دراز کشیده بود. داشتم اتاق را ترک می کردم که او ناگهان بلند شد و در جای خود نشست و با حالتی اسرارآمیز را میز گفت چارلز من مطلب مهمی دارم که باید به تو بگویم. خیلی مهم است. ممکن است در آینده تو اهمیت قاطع داشته باشد. ابتدا توجه زیادی به حرفهای او نکردم مادرم در آن روزها به نحوه عجیبی حرف می‌زد چیزی که من برای اولین بار متوجه آن شدم بازوهای او بود که به وضع رقت آوری لاغر شده بودند درست مثل نی مادرم دستش را به سوی من دراز کرد و من با یک دست بازوی او را نوازش دادم بازویش چنان لاغر بود که در یک دست من جا می‌گرفت همچنین چشمان سیاه و درشت او را در چهره لاغرش دیدم. چشمانش نگاه های وحشی و حراستده داشتند. مادرم که نگاه سرگردان مرا دیده بود با اصرار گفت چارلز تو باید گوش بدهی؟ سپس ناگهان کلمات مانند سیداب از دهن او بیرون آمدند و اغده های ترس و نارضایی که در سالهای ازدواجش با پدرم در درون او انباشته شده بود بیرون ریختند من تنها کسی بودم که این کلمات را می شنیدم. زیرا در آن دقیقهی به خصوص به اتاق او رفته بودم و علاوه بر این چون روز تولدم بود در کانون توجه او بودم مادرم بعد از بهبودی آن حالت سخت را با پشیمانی به خاطر می آورد و به من می گفت در تمام مدتی که حرف می زده می که این حرفها را نباید بزند اما نمی توانست جلوی خودش را بگیرد. های مسکن اراده او را نابود کرده بود و بر زبانش تسلط نداشته است. مثل این بود که شخص دیگری در وجود او حلول کرده بود و با زبان او سخن می است. مادرم نظری را که درباره پدران داشت بیان کرد و توصیفی وحشیانه از او بود. اما مردی که او توصیف می کرد، مردی را که او در تخیلات بیمار وار خود می دید شباهت به مردی داشت که من به عنوان پدر خود می شناخدمش. مادرم او را قول عجیب و ای که مانند افسانه های اساتیر هیولاست و قدرت تخریبی باور نکردنی دارد توصیف می کرد. مادرم می که پدرم همه این قدرت را سالها برای نابودی او متمرکز کرده است. جاسوسان او مادرم را تا اسکاتلند دورده از تغییب کردهاند و سبب بیماری او شدند. الان هم همه دور بر او هستند. این جاسوسان مجونهای وحشتناکی دارند که با آنها هوا را مسموم می کنند و او به آسانی می‌تواند بوی این هوای مسموم را بشنود. بعدن پزشکان توضیح دادند که شام حساس شده او بوهای داخلی خودش را که از طرشهای قدده پرکار بدن او ناشیمی شده میشنیده است. مادرم می گفتفت: توانسته است از چنگ مرگ به وسیله جاسوسان پدرم بگریزد، اما نمیداند تا کی خواهد توانست به این کار ادامه دهد. کلمات درخشان مادرم مراتل اسم کرد. سر جای خود میخ کوب شده بودم. و مادرم عقیده خود را درباره نیروهای شریری که در اختیار پدرم بود تکرار می نمود. می گفت، این همه پول دارد. هر کس را برای هر کاری که دارد می تواند عجیر کند. تقریبا غیر ممکن است کسی بتواند از پس او برآید. مادرم شبهی شریر را بدخواه از خیالات خود ساخت. این شبه مثل جنی که از چراغ جادو در می آید، شکل میگرفت و مثل قولی در اتاق تاریک برپا میایستاد مادرم حالا به طرف من خم شده بود و محرمانه می میگفت چارلی من به تو اعلام خطر میکنم تو هم نام او هستی و او نمیخواست اینطور باشد او میخواست این اسم فقط مال او باشد به طوری که فقط یک چارلی چاپلین در دنیا باشد حالا دوتا چارلی چاپلین هستند از این جهت او میخواهد تو را از بین ببرد مادرم زیر گریه زد سر و پا میلرزید و در میان حق هق گریه ادامه داد او نه هرگس نمیخواست چون تو به وجود آمده بودی با من ازدواج کرد به این ترتیب از همان اول تو رو نمیخواست چارلی من باید تاریخ تولد واقعی تو را برایت بگویم امروز بیست و شوهن روز تولد تو نیست روز تولد واقعی تو پنجم ماه می است سوابق و اسناد تولد تو را تاخیر دادیم. میبینی، او همه جور دارد. تو نمیتوانی با او بجنگی، نمیتوانی. صدای مادرم به فریاد خشم و هیستری مبدل شده بود که نانا وارد اتاق شد. من آرام از اتاق بیرون رفتم. در اطراف خامیه به قدم زدم پرداختم. آنقدر گیج بودم که نمیتوانستم درباره آنچه مادرم به من گفته بود تفکر و تعقل کنم. و غذایا را چنان برای من واقعی نشان داده بود که دیگر به هیچ چیز نمیتوانستم مطمئن باشم. لازم بود با یک نفر درباره این مطلب صحبت کنم. سیدنی به یادم آمد. دنبالش گشتم تا پیدایش کردم و همه چیز را درست همانطور که مادرم گفته بود برای او گفتم. سیدنی گفت: «توجهی به حرفهای مادر نکن او مریض است خیلی هم مریض است. قویقاد اصلا نمیفهمد چه میگوید فقط از خودش مطالبی در میآورد و سر هم میکند کلمات استیدنی مثل سوزنی که به توپ باد کرده فرو کنند در من اثر کرد این حرفها ها که منطبق با عقل سلیم بود تمام تصویر تخیلی را که مادرم با چنان وضوحی کشیده بود محو کرد بعد نانا هم حرف او را تایید کرد نانا نیمه گریان میکوشید مرا آرام کند و میگفت چارلی، او هزیان میگوید. هر هرچه گفته است فراموش کن. اول من تلویحا همه ی حرف های سیدنی و نانا را قبول کردم. چون اینطوری بهتر بود. اما اندکی بعد مسئله شک و تردید در وجودم روشن شد. دوباره در این موضوع فکر کردم. هرچه بیشتر فکر می کردم، بیشتر به این نتیجه می رسیدم که دست کم یک نکته در حرف های مادرم خیالی نیست. و آن درباره روز تولد من بود این مطلب در میان همه حرفهای دیگر درست به نظر میرسید و همه مسائل مربوط به روابط من و والدینم را دگرگون می‌کرد پس مطلب فقط بر سر این نبود که آنها پس از ازدواج با هم ناسازگار شدند از اول نمی‌خواستند با هم ازدواج کنند من آنها را به این کار مجبور کردم به این ترتیب علت همه ها و ناشادی های آنها و شاید علت بیماری مادرم من بودم منطق کودکان وحشتناک است همین که شروع کرد دیگر برای به عهده گرفتن بار گناهان حدودی نمی‌شناسد